الرحمن الرحيم الحمد لله و صلاة على سلام علی الله صلی الله علیه و سلم رب اشرح لی صدری و هست لی امری و حل لقت دم لسانی فقه محترم وقت ما درباره شخصیت بزرگوار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم در حقیقت انسانی که واقعا شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درک بکنه احساس بسیار کوچکی میکنه که از او یک شخصیتی در اوت و شرایط صحبت بکنه که همه مصروف مادیات و همه به تفاوت شدن و همه حقیقت های دین ترک کردند و روز به روز دیوانوار به طرف برنامه‌های دشمنای اسلام در حرکت هستند امروز دشمنای اسلام بزرگترین شخصیت اسلام که در قلب ملیون ها مسلمان جای داره بالا یزو تعرض و تجاوز صورت می گیرم و ما فکر می علت اساسی که بر دشمنا فرصت داده شده که بالای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بالای قرآن عظیمشان و بالای مقدسات مسلمان ها تجاوز بکنن ای در قوت خود مسلمانان ها نیست بلکه علت اساسیشی است که خود مسلمان ضعیف زیف شدن شما ببینید اگر یک کسی در مقابل یک پهلوان که شش ماه پهلوانی کرده باشه اصطاد شوه و خودی ازی هیچ پهلوانی نکرده باشه بالاخره در مقابل از او شکست میخوره اگرچه هر قدر بدن قوی هم داشته باشه ولی باز هم در مقابل از شکست میخوره و ایره به زمین میزنه امروز علت اساسی داری نیست که دشمان قوی هستن بلکه علت دهی است که ما مسلمان ها ضعیف شدیم ما مسلمان ها نتانستیم که شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر مردم به شکل درست و مثبت و صحیح معرفی بکنیم خود ما نمی امروز اگر احسایه بگیریم یک مسلمان در 24 ساعت زندگی خود شاید 10 ساعت دوازده ساعت بر خود تقسیم اوقاتی شنیدن و دیدن برنامه که دشمن های پیغمبر او را می تخصیص داده باشد. ما شما اگر ببینیم وقت در موتر سوار میشیم وقتی در خانه می باشیم، وقتی در دفتر میریم وقتی در بانک میریم در هر جایی که میریم خود ما برنامه های دشمنای اسلام سر خود تطبیق میکنیم و اگر یک مسلمان در بین خانش یک خبرنگار بیای و مصاحبه بکنه شاید های ما نام چار صحابی مبارک یاد نداشته باشه اما اگر برعکس از وی از پیشان سوال شبه که چند هنرمند و چند بچی فیلم و چند بدماشه فیلم مشناسه شاید سطحاره بتانه که برای انسان لیست بده. بنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم امروز از ما مسلمان ها است ما باید خوف وزیر داشته باشیم که نشه که در روز قیامت بخوایم در زیر بیرق پیغمبر صلی الله علیه و داخل شویم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیای پیش از کافران ما که ادعای ایمان میکنیم دست ما را گرفته وزیر بیرق خود بکشم با ما چی محبت داشتی؟ آیا در 24 ساعت عمرت 15 دقیقه، 10 دقیقه برای شناخت ما تخصیص داده بودی؟ نه. اگر کس میگه که ما در 24 ساعت عمر خود 10 دقیقه بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای شناخت پیغمبر اسلام تخصیص دادیم، باز اونو نفر است که میتونه ادعا بکنه که حقیقتاً امت محمد صلی الله علیه و سلم است. ما این تخصیص نداشتیم ما مثل که پیشتر استاد گفتن همیشه متعصر استیم به دیگران چرا دشمنای اسلام مثلا شما ببینین چرا غربی ها یک روز مشخص برای حضرت عیسیٰ علیه سلام دارند علیت شیست که اونا در سیست و پنج روز سال حضرت عیسیٰ علیه سلام فراموش کردند بنان سال یک مرتبه او رو بیاد میرند او رو تجلیل میکنند چرا مثلا یک روز روز زن است؟ به خاطر ازی که در طول سال از زنها منیس وسیله بسیار زشت استفاده میکنن و باز مادر خو از خانه می کشن و او را در اماکنی که مخصوص كهن سالاست او را جای میتن باز یک روز نام روز زن است که یک کمک از او قدردانی میکنم و امروز ما مسلمان ها این برنامه از اونا را تدبیق میکنیم ما حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم باید در 24 ساعت زندگی خود به شکل عملی و نظری با خود داشته باشیم در غیر زمانه نمیتونیم که مسلمان حقیقی شویم ولی ما چون عین کار میکنیم تمام شب در خانه های ما فیلم ها و سیدی های ایندیست و اولاد های ما همیشه از برنامه های خیر مسلمان ها استفاده میکنند از این خاطر زیادتر علاقه مند هستیم که در روز مولود پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیسه جمع بکنیم خود ما این پیسه را بتیم و خود ما در امی روز رو مصرف بکنیم خود ما از او پلا و قرمه جور بکنیم و خود ما بخوریم برادرای عزیز چون شما از ما دعوت میکنین ما مجبور استیم ها را براتان بگوییم در غیر ازی در روز قیامت شما از یخن ما خواد گرفتین و گفتین که شما آمدین ولی حق نگفتین به این که ما پیش میریم حق پیغمبر صلی الله علیه سلام ادا نمیشه این که در روز میلاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما محفل بگیریم و چند عالم به گپ بزنن و وقتی کونا گپای خود خلاص کردن با سر از اونا بکنیم فلانی خوب گفزد فلانی خراب گف زد و باز بیشنیم مسجد خانه خدا را جای خورد و نوش قرار بتیم و مزجد دیگر هم که سل بکنیم که چندین جای فرش شام چرپ شده و چطل شده و باستا مولود آینده پیغمبر صلی الله علیه و سلم را فراموش بکنیم به این شکل حق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ادا نمیشه اگر می خویم حقیقتا رسالت خدا در این شرایط ادا بکنیم اینا شما میبینین اینا ما را خواستن که به این گپ بزنین لکن در بیرون قرار مجلس است و مکه که از ما دعوت کردن خودشان قسم میکنن و متوجه گپ ها نیستن فقط منتظر ازی هستن که چه وقت گپای ما خلاص شه و دسرخونه وار شه و نان توضیح بکنن اینا میتونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلام خوشنود بسازه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این کارها خوشنود نمیشه اونجا اونجا ده شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تجاوز میشه در باری قرآن از ایم فیلمای فلمای زشت میشن و اونجا ما مسلمان ها امرای کسانی که اینمی کارا را میکنه امرای از این ما ارتباط مستقیم و سفارت ها داریم و دوستی ها داریم و مجلس ها داریم و مؤسسات از در کشور خود برشان جای میتیم و یک روز هم بر علیه ازی اعتراض نکردیم وقتی کسی که دشمن پیغمبر خدا را در خانه خود جای بته دشمن قرآن را با او دوستی بکنه با کسی که دشمنی با قرآن داره سفارت از واز بکنه با کسی که مستقیما سر پیغمبر خدا و سر قرآن از امشان تجاوز میکنه به همراه از اونا مجلس داشته باشه ایچ وقت ادعا نکنه که ما پیغمبر خدا را دوست داشتیم پیغمبر خدا از اونا بیزار است پیغمبر خدا در روز قیامت به طرف ای ملت سعیل نخواد کرد. ملت که هیچ وقت نتانسته که نه, در، نه خودش پیغمبر خدا بشناسه و نه تانسته که بر دیگرها او را معرفی بکنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی ما را دوست می داشته باشه وقت از خود پرسان بکنیم که ما چی که پیغمبر خدا من را دوست داشته باشه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت ما را دوست می داشته باشه که ما اخلاق پیغمبر صلی الله علیہ وسلم گفته های پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درست بشناسیم و با به شکل مثبت او را معرفی بکنیم امروز کسانی که تجلیل از میلاد و نبی میکنن و ایروز بسیار مقدس قرار میتن در حال که هیچ قدسیتی در کتابها ها درباره ایروز نامده چون پیش خدای عز و جل محافل و مجالس گرفتن ارزش ندارن انسان مسلمان باید عملا عملا اعمال اینه که انجام بده که اگر بگویم بر جانب مقابل اصحاب کرام بر دیگران میگفتن که کونو مثلنا بین مسلمان ورش شویم امروز ما گفتم میتونیم برای یک غیر مسلمان که بین مسلمان شویم دو دقیقه پیشتر پنج دقیقه پیشتر وقتی که من میامدم در را من یکی از دوستا قصه که دموترش دو سیا سر پشت سر است و مرد که در پیشوریش از شاید یک مرد یا دو مردی بوده باشن اونا در باین موتر خود شراب می یعنی وقتی که ما این عمل انجام بتیم و به این اندازه غیرت شویم که اگر در اون موتر نشه شاید ناموسش و هر چیزش که تجاوز میشه، نمیتونه که از که در مقابل از اون چیز را انجام بتن امروز ما وقتی که در خانه خود داخل میشیم، در دا وقتی که در خانه خود داخل میشیم، اتو داخل شدن در خانه، وقتی برای یک مسلمان بگی بر خانه و دخترت سلام بتی، عزی ننگ میکنه و غیرت میکنه. در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در خانه خود داخل میشد، بر اصحاب خود امر میکرد که شما وقتی که دخانه داخل میشین سلام بتین که ای سلام بس شما و بر اعضای فاملتان برکت است یعنی ما عدیقل وقتی در اوت یک مجلس میشینیم باید یاد بگیریم که پیغمبر خدا چی میکرد و ما سر از امروز تصمیم گرفتیم که زندگی خود مثل زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مارم ایساسیم اگر ای کار ای کار کرده تانستیم و اگر این شست ما در زندگی ما یک تغییر راورد که امروز قصد کردم که بادازی ما خودم مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام آراسته می‌کونیم درو صورت ما کامیاب استیم و نشاست ما کامیاب است ده غیر این نشست چه فایده نخواهد کرد برای ما خداوند مطال جل جلو بر پیغمبر صلی الله علیه و سلام می که و ما ارسلنا ک الا رحمت للعالمین ما ترى رحمت بر بشریت فرستادیم وقتی که خدای عزوجل پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت بر جهانیان فرستاده که در عالمین علماء میان که انسانها و حیوانات و نباتات همه شامل هستند آیا ما تانستیم که رحمت رسول الله صلی الله علیه و به شکل درستش بر مردم معرفی بکنیم و خود ما منی یک مسلمان مهربان زندگی داشته باشیم که زندگی پیران است یا ای حنبی و ان اررسنا که شاهدن و مبشررا و نظزیران و دایان ال اللهی بذنیی و سراج منیران خداوان مطال جله جلووب بر پیغم بر سلام که ا پیغ بر سلام ما تو را شاهد فرستاده، تو را بشارت دهنده فرستادیم که مردم بشارت بتی جنت و به و به رحمت خداوند مطال و نظیرن و ترساننده و دعین الله به ازنه و ما تو دعوتگرد در راه خداوند به اجازه خداوند آیا ما عبد اقل بیروی از پیغمبر صلی اللہ علیه سلام در بین خانه خود کردیم پیغمبر صلی الله علیه سلام ایمان انسان بسیار باعث تفسیر می کند. ایمان قوی 60 فیصد، ایمان متوسط 50 فیصد و ایمان ضعیف 5 فیصد. من در آمین کمون کردم، فلیو اگر یکی از شما یک کار بد و زشت یک من کردم می فل بینم، فلیو غیرهو باید اونا بعد است خود تغییر بده. ما وقتی که در بین فامیل خود بینیم که پسرای جوان ما، اولادهای ما، و گمراهی وطلاح هستند، آیا تا آیا تصمیم داریم که با دست خود، اینه تغییر بتیم؟ کسانی که خواستم که ایمانشون 100% باشه، کوشش کردم که حداقل تلویزیون خانه خود به کامپیوتر مبدل بکنن. و به ایواز از که تمام روز اولادهایشان فلم و سریال های اندیو و امریکایی رو ببینند به ایواز از او خانه خودن به سیدی ها و کسیت های اسلامی مبدل کردن به اینسان میتونه بگه که من تانستم خانه خودن با دست خود تغییر دادم در صورتی که یک پدر در خانه داخل میشه و میبینه که خودش خریداری کرده تلویزیونه و سیدیره و اولادهاش گبره میشن و تمام روز میبینه که اولادهاش بطه را میبینن با بط محبت حاصل کردن طفلایشان تمام روز اتا در ساتری های خود صادری های اون دوها رو میکنن و این پدر در مقابل عزی به تفاوت از ایمان ازی چند فیصد خود بود من را آمین کمون کرن فلیغیرهو بیادهی عذقل بودست خود برای تغییر دادن سرنوشت فامیل خود باید انسان کار بکنه خب بعضی‌ها شاید بگن که فعلاً می استطیع ما ولا پسر جوان فامیل هستم پدرم بسیار بیزین و گمراه است منم میتونم تغییر بدم اگر تغییر بدم پدرم سر من حمله میکنه ما جوانایی داریم که از پدرای خود همین شکایت دارن میگه ما میخواهیم که پدر ما به تلویزیون و به جای فیلم و سی ها کسی تو سیدی اسلامی را بیاره بر ما درست دین به تاعتقل اجازه بده که ما برای خواهر و برادر خود یکان کتاب اسلامی را یک حدیث است. ای را بخانیم؟ مخالفت میکنن. ما بسیاری وقتا تا مجلسا ششتیم وقتی برشان میم که تویانه حرام است. باور بکنیم چند پیش در یک مجلس ششته بودیم و گفتیم که تویانه در دین مقدس اسلام مطلقاً حرام است و دختر فروشی است در اسلام که محر است یعنی ما کسایی رو دیدیم که ادعای ایمان میکنم و پنج وقت نمازش در مسجد است و در جماعت است ولی مخالف از این گب طرفتار تویانه بود وقتی برش میریم که شما پیغمبر خدا میه که حلال برای جوانها آسان بسازین و حرام از سخت بسازین. امی بزرگایی که در آی فامیل بودن ما کم بودن که نه باید در آرسی اتمن باید ساز باشه اتمن باید در وطل باشه وقتی میگفتیم که ای داماد بیچارن پول از کجا بکنه ای خب خو میخواه که از حلال ازدواج بکنه دیدیم که بسیاری کسایی که ادعای ایمان می و تسبیح های ازاردانه گیده جیب خود می پرتن و همیشه می که ما پیرو پیغمبر خدا هستیم و همیشه ادعا می وقتی که گف پیغمبر خدا برش به گف پیغمبر خدا را قبول نمی کردن آیا این شخص ما گفتم می که این دوست پیغمبر خداست یعنی من تنها ماندم در یک مجلس مایوز شدم از این مسلمان ها کاز از همراهان سست آناسور دلم گرفت شیری خدا و رستم دستان محارزوست میگه که من دوست فیغمبر خداستم میگه که من خدا رو د دارم میگه که من قرآن دوست دارم میگه که ما رسول خدا رو دوست دارم ولی وقتی که فرصتش بیا که نوبت عزیز که باید از پیغمبر خدا از کلام خدا از دین خدا طرفداری بکنه ماده او اول بکنم باز مخالف قرار میگین باز میگه که نه باید دلگر لغ باید باشه میگه نه باید توی وطلب باید باشد مگه نباید خانم های ما عکاسسی و فیلم برداری شود وقتی برش میگیم که دختری رسول خدا بر مردم نصیحت میکرد که مرا شو دفن بکنن که جسد مرا مردهی مرا نا نبینه و تو پیرو پیغمبر خدا چطور اجازه میدی بر خود که دخترت، خانمت، خواهرت یا خراهشان لچ قولایشان لچ و در بین مردم و زنا میرقصن و تو باز میگه و با امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم استم یا از کسی که امروز بوئه که من به خاطر خدا ناموس خدا حفظ میکنم آیا کسی از که بگه ما خاطره ای که رسول خدا خوش شوم از ساز و از رقص در بین عروسی دخترم اجتناب میکنم آیا کسی از که بگه ما دخترو خره مطابق سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلام نکا کنم. آیا کسی می که مثل بی بی فاطمه اولادای زندگی بکنه؟ آیا کسی از که مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلام وارد زندگی بکنه؟ و ما خدا چرا فریب میتیم چرا خدا بازی می دین؟ که در روز قیامت بذیر لا اله الا الله بریم و پیغمبر خدا به دست خود و ما را از زیر خود بکشم و ببینید که تو خود دشمن ما بودی دشمن سنت ما بودی دشمن کتاب ما بودی دشمن قرآن بودی دشمن حدیث بودی و تا مسلمان مانده بودی با دشمن های اسلام میششین با او پروتوکول امزامه میکردیم. برای کسی رأی میدادین که او دشمن خداست دشمن رسول خداست در انتخابات از او اشت کسی است که دشمنای خدا را آمریکا تمر از اونها را بسطا میکنه ماز نیست، صورت ما میتونیم که به می پیغمبر خدا ما تو را دوز داریم. ای پیغمبر خدا ما امروز اگر پیغمبر خدا حالت افغانستان رو میدید گریہ میکرد. سر ملت افغانستان گریہ میکرد. مسلمانوها بمبارد میشن. مسلمانوها کشته میشن. مسلمانوی رخت گتگی میشن. ها در غزه کشته میشن و ما با اونم دشمن خدا، با اونم دشمن پیغمبر در یک میز مذاکرات میشینیم با وره به نش دوز دو خود مشناسیم؟ تفکاو در فلسطین در غزه جسدایشان تک تک میشه و ما 24 ساعت موسیقی میشنویم آیا جواب این مسلمان ها را چی خواهد دیدن؟ در زمان معتسم بله یک کافر یک زن مسلمانه بندی کرده بود نصب شب صدا کرد که و معتسم ای معتسم من را از چنگ کفار نجات بده. معتسم وقتی که کابینه خود را دعوت کرد قماندان های خود دعوت کرد جنرال ها را دعوت کرد که سباه چطور کنیم اونا گفتن سعی شب ما را وقت بده صحبکی ما بر تا نظر میتیم که چی وا دلش تاکت نکرد، منتظر مشوره نشد. دنبال نیمی میشود حرکت داد و اوزان مسلمانان را جاداد و چندین ولایت دیگر گرفت محتسم بوده که ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم استم. اگر او بگوید اگر انسان وقتی که میبینه که دشمنای خدا، دشمنای خدا، کارتونای رسول خدا صلی الله علیه و سلم میکشن، و عتیقه و وقتی آخر وقتی که اون مجلس میشنا، آخرین برزو کافر بوده که تو خائن، تو جناح کار استی، تو بیدین استی، تو دشمن، تو مخدس سرین شخصه. ای به عزت میسازی. آخرین خب وقتی بر شدم، وقتی که دیدش برش بگویم. برشاعت اقل camera خود حکقات نکنه ادی در موثس زخ غوبایت کار نکنه ادی برنامه زولخ وبایت تدبیخ نکنه ادی اقل سفارت ازولخ ادعا بکنه ادی اقل اگر ایش سفیدا بگیزن یک خطروان بکنان ازر منطقه و بگوین که وبایت ازی دشمنای اسلام از هلند و از دنمارک وبایت سفارتاش کشیده شوه. از askerش وبایت در اینجا نباشن قواتاش وبایت نمانن و اگر باش خونش وبایت بگه که حلال از خون ازی مردم ها بازو اخمامی دارن که بگه مسلمان حقیقی هستیم بر غیر از او وقتی که ما قرار بشینیم و سیل بکنیم و دشمنای اسلام تمام برنامه های خود رو تدبیخ میکنم و ما انوز هم به طرف اولادای خود اونار انوز هم دعوت و خوش آمدهت میکنم که امت پیغمبر خدا هستیم و رسول خدا از ما راضی خواد بود هرگز این قسم نمیشه ترسم نرسی به که بای این راه که تو میروی به ترکستان است ایرایی که ما و شما در حرکت استم ایران راه سعادت نیست راه خوشبختی نیست راه نجات نیست راه خلاصی نیست راه نیست که رسول خدا را خوش خوشبستاده راه نیست که فیغمبرهای خدا را خوش خوشبستاده راه نیست که اصحاب کرام خوشبستاده راه نیست که ما را زیر بیرق لا اله الا الله قرار بده. ما به چشم خود میبینیم؟ ما به چشم خود میبینیم که دشمنای اسلام چی جنایات را نمی‌کنند. در طول یک ما در غزه فلسطین یهودا سهیونستا برق سرشان قطع کردن آب سرشان قطع کردن بمبارد میکردن خاطر چی؟ اینا ترویست هستند؟ او کس که در خود است؟ او کس که از خاک خود دفاع میکنه او تروریست است او تروریست شد او فلسطینی که از خاک خود دفاع میکنه او رو ما میگیم تروریست است او فلسطینی که از ناموز خود دفاع میکنن او را می گم تروریست است. او ایرانی که از خاک خود دفاع میکنه او را می تروریست است. او افغانی که از خاک خود دفاع میکنه او را می تروریست است. او مجاهده که بزید روس جهاد کرد، او را می گم تو فانسالار است. و او کسی که کمر روسا بسته میکنن کنه، کمر آمریکا را بسته میکنن کنه، کمر سه را بسته می کنه، بازم می من مسلمان هستم. خدا بازی نکن. خدا بازی نکن. نه دوست خداست نه اونمو انسانی که در غذا کشته میشه اونمو انسانی که در ایراق به شهادت میرسه اونمو انسانی که در اونموجه به خاطر وطن و به خاطر ناموس به خاطر دین خود به شهادت میرسه و رسیده اونمو رو خدای اززا خوش خوشداره و در روز قیامت زیر بیرق لا اله الا الله خواد بود اما کسایی که کسایی که جنایت کار تایید میکنن، دشمن خدا را تایید میکنن. دشمن قرآن تایید میکنند، دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم تایید میکنند. هر کس نمیتونه که دوست پیغمبر شو و هر کس نمیتونه که دوست قرآن شود و خود فرق میکنن و بازی میکنن و اگر به هزارها مجلس و محفل جور بکنن، باز هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم راضی نمیشن. کسی که به خاطر ایران عشق نریخت، کسی که به خاطر افغانستان عشق نریخت، کسی که به خاطر فلسطین اشک نریخت، کسی که به خاطر شدن یک مسلمان یک طفل مسلمان قلبش در نگرف از امت رسول خدا صلی اللہ علیه سلام حساب نمیشه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهن آدمی حضرت سعدی میگه که از مهنت دیگران که بیغم هستی خدا آدم حساب نکن پس چطور میتونیم خدا مسلمان حساب بکنیم که در مقابل از دل ما هیچ متثر نشم در مقابل از او هیچ متاثر نشیم. باز هم اونمو دوسی باز هم محبت باز هم نشست با کفار باز هم مو کفار در موسات کفار و در مات صلیبی باز هم تحت بیرخ صلیبی کار کردن و برنامه های از اوار انوز هم پیش بردن انوز هم کار از اونا را کردن با وجود از او بازبیم که ما دوست رسول خلاص الله به و سلم استیم هستیم. لقد جاكم رسول، لقد جاكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم أنتم حريصون عليكم بالمؤمنين راوف الرحم خداي عزوجل در سوره توبة در آیه یکصد بیست و میگه که همانا برای شما پیامبر از نو خودتان یعنی بشر برای شما آمده است از آنچه رنگ میبرید بالای او نیست سخت میگذارد یعنی وقتی کسی چیزی که شما رنگ میبرین پیغمبر خدا صلی الله علیه سلام هم رنگ میبرن حریصان علیکم بسیار در, آ... در... در رساندن حق و خاطر از اینکه مسلمان ها بتانند زندگی خوب داشته باشند حس بسیار زیاد دارد بالمؤمنین رؤوف و رحیم بالای مؤمنان رؤوف و رحیم است رعوف مانایش ای که از کلمه رعفت گرفته شده یعنی کوشش میکنه که از مسلمان ها به دیهار دور بکنن و رحیم و بسیار مهربان است وقتی که شما در مشکلی باشین قلبش همیشه جریهدار میشه و باز برای مسلمان ها چی میگن؟ قل خدای عزیز و میگه که ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بگو برای مسلمانان این کدوم الله اگر شما خدا را دوست دارین فا الطبعونی پس مطابعتی مرا بکنین یحبیب الله تا که خدا شما را خوش راشته باشه چه قسم میتاریم که خدا مرا خوش راشته باشن؟ این سوال انسان از خود بکنه آیا خدا مرا خوش داره؟ من خدا را خوش دارم آیا خدا مرا خوش داره؟ چه قسم خدا مرا خوش داشته میتین؟ خود قرآن برمو میگه این کنتم تحبون الله؟ اگر شما خدا را خوش دارین برای مسلمان‌ها بگو فتبعونی پس مطابعت مرا بکنین یعنی دوستی خدا به مطابعت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بسته کرده امکان تو حبون الله اگر شما الله را دوست دارین فتبعونی پس مطابعت مرا بکنید رسول خدا صلی الله علیه و وسلم خدا میگه باز اگر شما پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و کردین یحبیب کم الله باز ذات الله جل جلوه شما را دوست می داشته باشه پیروی را چی؟ در اخلاق پیغمبر در سیرت پیغمبر در شناخت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ما متاسفانه اگر از اخلاق صحبت بکنیم مشکل داریم اگر از روش صحبت بکنیم مشکل داریم و این روزی فرصت است که ما باید بفامیم که حضرت بیبی بی آیشه رضی اللہ تعالی هم میگن که هیچ کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هیچ کار دعوت نمی کردن مگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را میبسی حضرت عناس بن بیالک رضی تعالی هم میگن میگه یک روز. ما امرهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم در, حرک... در راه میرفتیم که یک بادی نشین, یک صحرایی آمد اون مردم های صحرا عرب بسیار تندخوی میماشن میگه ای آمد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک برد قدیفه یا هر چیزی که او را میپوشیدن چپن یا هر چیزی که میگن نجرانی نجرانی میگفتن که او را غالبا پشمی جور میکردن که غالبا از موی بز می بود بچار سر سرشانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود میگه ای وقتی که آمد عنانس ابن مالک ندی اللہ و عنو قال کنتو امشی مع نبی صلی الله علیه و سلم میگم رای پیغمبر برش اللہ علیه و میرفتم و علیه برد النجرانیون غلیز الحاشیه حاشیه امی چار اطراف ازی از بچار دروش و سخت بود فادركه اعرابی فجذبهه جذبه شديده حتى نظرت الى صفحه حاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرت بهی. حاشيه الرضا من شدتي جذبته دیگر ما دیدم که این اعرابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از ام قدیفش گرفت اتکاش کرد که حتی مگم دگردن رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیدم که امی چاپ کش کردن ازی کی لوگور کرده بود مثل خطواره مانده بود اثرش در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بادازی میگه این پیغمبر صلی وقتی که وسلم وقت کسونش کرد میگی برش با فیشان بسیار شدت گفت که ملی من مال من مال الله لزی هنده کرد فی پیغمبر خدا از اون مال خدا که پشتان است بگو بره اصحاب کرام که بره محمد بدن فلتفت ایلیه میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم روی خدا طرفش دور داد او وجود ازی که گردن مبارکش آسیب دیدن جای اوگاه شدگیش معلوم میشه من بچشم خود میبینم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فدحه که خنده که تون ثم امر الله به عطا باز برای اصحاب مبارک گفت که اگر چیزی از مال بیت المال است برای برازی ضرورت هست برش بتین. حدیث دو هزار و الخمس و شانزه بابو فرد صحیح, بخ... صحیح بخاری شریف حدیث دو هزار امروز وقتی ما این حدیث شریفه میخانیم و این رو بیاییم مقارنه بکنیم با روش خود ما مقایسه بکنیم با عکس العمل خود ما که اگر یک کسی سر پای ما پای خود بانه یک کس پای خود سر پای ما بانه باور بکن که بوده دو, دو نزنیم اگر علاج بدیم اگر یک نفر اشتباهاً، در راه هم رای ما متکر کنه تا کور 200 مرتبه بیاب نکنیم اون رو اعلان نمیتیم آیا ما می تونیم که ممثل اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشیم کنتو بخیر امتین قرآن از مشان به شما بهترین امت هستین یا خدا یزاج ما چرا بهترین هستیم به خاطر رنگ ما نه خیر به خاطر قوم ما نه خیر به خاطر چی اخرجت لیمناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنكر بهترین مردم استین که برای مردم بیرون شدین شما وظیفه پیغمبرها را به دوش دارین سلسله پیغمبرها قطع شده آن شما باید مردم بدین با خدا دعوت بکنین تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر شما مردم بیست چهار سب بنیگی ها دعوت میکنین و از بدی ها مردم منع میکنین از این خاطر شما بهترین امت هستین آیا ما برای اولادهای خود برای اولادهای خود عدی اقل در 24 سات ده دقیقه شناخت خدا و رسول خدا برنامه داریم متاسفانه نداریم یک عالم امریکایی مسلمان شده بود وقتی اون را پرسان کردن گفتن که علت مسلمان شدن خود چی است گفت ما در حال که خودم دکتورا دارم ده تعلیم و تربیه خودم دکتر هستم ولی من یک تفلک سنف دوی مکتب مسلمان ساخت یک تفلک سنف دوی مکتب تفل سنف مکتب تور مسلمان ساخت میگه بله چطور میتونه یک تفل سنف مکتب یک کافر مسلمان بسازه میگه وقتی که ما خواستیم که سیستم تعلیم و تربیه ما قوی شده و این به شکل ابتدایی گفتیم فهمیدیم که اصل فای پایین شروع بکنیم و پاانتون پانتون پا بزن، دستیف اول و دو سی درس بدن تا که آدابش چورشه با. وقتی که معلم دستیف اول تا دستیف دوازده بیسابات تربیت بکنن و یک نفر نامش مستافا باشه مستافا را بسیار نوشته بکنه باز دخواهد پانتون پا درس گرفت نمیتونه. میگم من رفتم دستیف دو درس میدادم. وقتی که دو رفتم خاص بپرسال بفهمم که ایت فلکا قسم؟ تربیه شدن بچی میخواین میگه هر کدوم از یا رو کردم که بچیم تو چی میخواییشون بچیم تو چی میخواییشون بچیم تو چی میخواییشون دختر تو چی میگه می هر کسه با مشکلی که مادر و پدرش رو تربیت کرده بود میگفت اگر مادر و پدرش 24 سال با ها هستن اولادش می که ما میخوایم رقاصا شویم اگر پدر و مادرش 24 سال قوشتی کشی سر میکرد بچش میگه فالا من هم میخوام من در تکرار شوم اگر پدرش 24 سال با امرای وندوها ارتباط داشت اولادش میگه ما هم میخوایم مثل وندو وار شویم ما هم میخوایم بود پرس وار شویم میگه تا بین اگر مادر و پدرش علم و کمال داشت میگفتن ما می میخوایم انجینیر شوم، دکتر شوم، یک تفلک خرد میگن بر من گفت که استاد من میخوایم صحابی شوم میگم من تعجب کردم که صحابی چیستم؟ گفت که صحابی گفت که صحابی شاگردای بوہنتون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است میگم ما برای تفلک گفتم که بچیم آیا کدام بوهندتونی و نام حضرت محمد صلی بود؟ میگو بله. میگو من خود نمیفامو تا بالن؟ گفی مشکل توست که نمیفامی؟ آیا ای بوهندتون شاگردائی داشت؟ میگو بله شاگردائی داشت کی بود شاگردائی؟ گفی اگلگو اگل اگل بیست هزار صحابه زن و مرد میگو من پرسانش کردم که بچیم مخازی گفه خبر ندارم مگه خلاص وقتی که تو خبر نداری بالاخره میگم من کردم امرای پدرش تماس گرفتم رفتم به خونی از اینا از پدرش پرسیدم که ای بچی تو چی میگی صحابی کیست؟ گو ان حضرت محمد کدام پانتون پا از شاگردای ای این صحابکی هستند و این تفر تو میگه من صحابی میشم صحابی چی معناست کدام مسلک هست میگی برام می گفت که من از کشور اروپایی و آمریکایی غرب زندگی میکنم لکن ما مسلمان هستیم ما دقیقه 15 15 دقیقه بر اولادای خود اصحاب پیغمبر را معرفی میکنم هر شب قصه یک صحابی را میکنم برشان یک شب قصه حضرت بلال را برشان میکنم یک شب قصه حضرت اباکسدیخ برشان میکنم یک روز قصه شهادت بیبی ثمهیرا برشان میگم یک روز قصه لث خوردن حضرت بلال را برشان میکنم یک روز قصه گشنگی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برشان میکنم میگه وقتی که من بر ازینا شیخ زارا گفتم میرفتم گفتم میرم میگه بالاخره جون هر شو اتپلای ما کسی یک صحابی پیغمبرو میشنوه در قلب از اینا محبت صحابی کرام پیدا شود از این خاطر طفلا من میگم که صحابی شو صحابی خود شده نمیتونن به خاطر از اینکه صحابی کی است که پیغمبرو دیده باشه و با به او ایمان آورده باشه و با ایمان فوت کرده باشه الانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام نیست ما نمیتونیم صحابی شویم ولی گفت محبت صحابه در قلبی پیدا شده اما تو یک آرزو دارم میگه بالاخره به با اساس محبت امیت فلقس الفدوی مکتب میگه من گفتم تو بیا قصای صحابه را من هم بخونم میگه من هم شروع کردم قصای صحابه را میخونم برشان گفتم این صحابه که این قسم اخلاق پیدا کردن چی رو خوانده بدن؟ گفتن قرآن عظیم شأن میخوانند گفتم تو بیا ترجمه انگلیسی قرآن شریف را اینا بلاخره گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله تفلس دو یا دکترها مسلمان بسازند ولی امروز ما مسلمان نمی‌تونیم که حتی بسیار سوی عالی داریم نمی‌تونیم یک کافر مسلمان بسازیم با خاطر چی با خاطر ازی که وقتی که تی یک کافر شدیم از او که ما به شخصیت میشیم ما لفیخات جا ششته بودیم یک زن تقریبا 6 6 ساله بود من دلم برش سوق گفتم والا یه زن 6-5 ساله بسیار روشیار فامیده بود گفتیم بیاییم بیچاره را اسلام را برش معرفی بکنیم میشه که اگر اگر 65 سالگی مسلمان شد بان این بیچاره به رحمت خداوند بره و به جنت بره این 65 سال زن من برش گفتم گفتم میشه که من تا را به اسلام دعوت بکنم و به دین خدا, دست خدا سونه. من با کدام دین دست خواهد سون دریوار خود گفت به دین اعظمی به دین اعظمی دریوار من دوت میگونه این دریوارم ماست. هر روز شراب میخورن هر روز سون سیاسرهای مردم میبینن دموبایلش مجرد که برای زنگ میهه ساز است. اگر در خانه خدا هم بره دستش دموبایل است که باید امون هم گیم بزنه در وقت نماز هم از موبایلش و از جیبش صدای خواندن ایندی خودش رو نماز خدا فاسد کرد نماز صد نفر دیگه هم بز خراب میکنه در مجلس درس هم نمیتد در دقیقه به خاطر خدا و پیغمبر خدا که موبایل و ساز خود گل, گل کنن امون جه هم چالان است امون جه هم باید این موسیقی بشنوه ای شرابخور ای زناکار ای دوز ای خائن، ای کسی که خانش از پیسه حرام است زندگیش با حرام است و وقتی که در مجلس بنایا بازی 24 سات از اسلام گپ میزنند. اگر ای مسلمان است مره از اسلام اگر ای مسلمان است مره از اسلام اگر ای کافر است در قرآن که من مسلمان شد. حضرت ابراهیم علیه السلام که رب بنا لا تجعلنا فتنه للذین كفروا خدایا ما را سبب کفر کفار نکردانی که کافر مرا ببینه گناهی مرا ببینه جنایت مرا ببینه قسم به خداست که سال گذشته یک دختر در پونتون آمد بر من میگه استاد بچی خاله م در انگلستان نامزد شده بچی خاله در انگلستان نامزد شده و آروسی کرده و بعد از آروسی خانم از وقتی که مسلمان شد گفت میرم چند وقت خدا چون نو مسلمان شدیم در کشور اسلامی زندگی بکنم میرم در افغانستان این جمعه خواهیم که یک چند وقت مسلمان ها را ببینم گفت وقتی که از انگلستان آمد در میدان اوایی کابل چادر داشت و روی خود پت گرفته بود هجاب کرده بود هجاب کرده بود شش ما گفت کابل تیر کرد دارسی رفت که امون مسلمان که میرم مسلمان استم در کسی ناموس خود نیست اما مسلمان لنگی پیغمبر خدا در سرش ریش پیغمبر داره لکن متوجه دختر و خواهر و قارم خود نیست اونا رو به هر کلم آراش کنن و پیش روی ها استاد میدن و میرسن و میرسن گفت شما مسلمان هستیم شما مسلمان هستیم جوان مسلمان کدجر حرکت است میره در مجلس انگلیسی میخوده که نماز عوار میکنه نماز میخونه یک زن مسلمان نماز نمیخونه مرد مسلمان در روسی خدا را فراموش میکنه مرد مسلمان در اوتر پایغنبر خدا را فراموش میکنه نکاهشو در زیر دون ساد بسته میشه میگه این دختر بعد از شش ماس پری کردن در شان کابل آلمه یک من اشتباه کرده بدون من مسلمانی رو ترک کردم امروز دنیا باز شده امروز روزی یک هزار کانا ما شما را برداری میکنه از آروسی گرفتن تا مرده گرفته تا خاله گرفته تا تا قلمو تا در تمام دنیا ما را عکاسی برداری میکنه ما بسیاری وقتا خبر نداره که بر ما از آلمان تلیفون میگه که استاد من اینم آلمان شششم خودت خودتو گوش میکنیم از برای یه سریوشن میگه والا من تاریخ از تو خبر آونا بده در وصله که دست میداده که شاگردای دستاتا ثبت دست کردم دست آقا منو آلمان ترا گذا این ما در روز قیامت چی خود گفتم بر رسول خدا چی خود گفتیم که به خاطر زیستی اعمال ما مسلمان ها کسی مسلمان میشه پس گبره میشه پس اسلام انتحق میکنه و این واقعیت است این واقعیت است بردر مسلمان امروز فرصدر یک از آلمان آمده که مسلمان شده بود؟ ای نای بچه کمی چه اصلاح از قیامتی این برای وقت کسا گفت از آزمان آمده و خانمش میخواد خواهی که شهر اطنامه اسلام رو بگیره میگه وقتی که در دفترها میره در دفترها وقتی که میره مسئولین دفترها میگه که برای ما رشوت بده میگی از ترس در خانم خود دوستان هم ایتانه که میگه او میگه چی گفت؟ میگه گفت که ما گفتا نم ایتانه میگه آن او شادنامه که میتونه مسلمان شو میگه شادنامه ور بتر. از محاکمه و سارلویی و پلیس و, و فلانی و فلانی و فلانی که میریم. ای کسی که یه بازرس دیگه مراکش نشانه فلانی مسلمان شد. میگم از چهش پشوش؟ یکو گفتنم میتونست؟ ولآخره میگی یا مجبور شدم گفتن؟ بن خیر است نبیش که میشناسم. شادنامه را از قارستان نمیگیریم. میریم از کلان اه... کشور دیگه میخوای بگی. این وقتی که ما به حالت حالات زندگی میکنیم. یک روز در جایی لذت بودم. معرض نبیشون خودی یک کس را می‌توند در نشروع کار ما خدا تو وجود تو بود تو بود تو بود عمو تو قرار پایگاه است اما آخر ما باشیم تو که خدا که ما از گاه زد تا نمیکرد این اصولا که توی خلاص یک کیلو در دام تا دوختی پایگاه ما را تو دنیا است خدا صحبت میکنی است و سلام از پیغمبر خدا که می‌زدی اینا وقتی ما میگیم پیغمبر خدا و وقتی میگیم ما امت پیغمبر خدا هستیم و ما میخوایم دیگرارا رو با با پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم بشناسونیم حداقل بگیم که به این از این های تشریفاتی خدا خیلی خیرتون بگه که امروز فرصت بر ازی که ما در باری پیغمبر خدا بگیرین ما کینه کفایت نمیکنه حداقل شفیدای از این مسجد کسایی که مسئول هستین ما یک مرتبه مجلس به خاطر پیغمبر خدا بگیرین ضرور نیست که باید خود ما تمام روز شولخوری و الواخوری به خدا دین اسلام اونمون تاجی و ریشتفید و ملای الواخور و شولخور دین اسلام خراب کرده ببین گوش نشینین در واری پیغمبر خدا گپ بزنیم ببین خالی بنوشیم در واری پیغمبر خدا بزنیم بیم غوری و دیگه بوسو کنیم تشریفات اونسو کنیم خیر است بمان که بین امروز یک جمعه ما و شما به خاطر پیغمبر خدا میشینیم جهان های خدا هم دعوت بکنیم هرکس از فامیل خود از به خود خبر بگیره اگر ما و شما یک ما یک مرتبه هم بشینیم و منظم اسیلت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم چون اون وقت میدونیم که ادی ادعاقل حق پیغمبر خدا را ادا بکنیم بی خفتن و خفتن وقتی که خالی خود میشینیم یک کتاب را پیدا بکنیم یک سی دی اسلامی را پیدا بکنید و خدا اگر شما سی دی اسلامی کار داشته باشید این نمیجه مسلمانایی هستند که برای شما صد دانه سی دی اسلامی را در یک شب تقدیم میکنند به این برناموار در خانهایتان رحم کنین سر اولادهایتان رحم کنین سر طفلاکایتان و خدا اگر طفلی که امروز در افغانستان است برای او برنامه ساختن که 10 سال بعد باهدیا اوندوشود باهدیا مسیحی شوند باهدیا کافر شوند او آل سر کار نمی مشترک افغانستان دشمنان اسلام میگه که سر عشچکا کار بکنین سر طفلهای خود کار میکران آمریکایی سر ازو کار میکنه اروپایی سر ازو کار میکنه هندوس سر ازو کار میکنن, از میکنن. تلویزیونای مختلف 24 ساعت بر ازنا تا که اینا را شخصیت شونا اوسو کنن. از بین ببرن جوانارا باید بے شخصیت بسازند، ولی ما مسلمانا ببین که عقل بر ازنا اسلام معرفی بکنیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی بکنیم پدری که در خانه خود شبانه 10 دقیقه درباره دین خدا و پیغمبر خدا و قابل کرام کف نمیزنه در روز قیامت اگر در جنت هم بره اینا ما برتون با صراحت میگم که او نشکه اولادش بیا و از پوشی اخر ازی بگیره و ای پدر خدا و پدر کلان خدا و مادر خدا و برادر بزرگ خدا و کاکا و مامای خدا کش بکنم و بگه که ظالم خداناپاست تو که می رفتی نماز می خواندی مکه گمراه بودم مک بیدین بودم علتش خود تو بودی خدایا این پدر من این مادر من این پدر کلان من این مادر کلان من ای برادر بزرگ و خواهر بزرگ من کسایی بودن که می شدن که مکافر و بی دین و گمراه شون این پدر که خودش خوب خود خدا و پیغمبر خدا را مشناق برای ما پیشوچو اون دوها را معریفه مگد خدایا تو خدات عادل هستی این هم کته ما به طرف دوزخ بره و علماء میگن که به بخ... خاطر یک زن چهار مرد دو دوزخ میره اگر یک زن دوزخی شوه برادرش پدرش شوهرش و پسرش این چهار نفر اعتمان امرای خود به طرف دوزخ میبرن از این خاطر باید ما مسئولیت خود در مقابل فامیل خود هم درک بکنیم برای فامیل خود هم پیغمبر خدا صلی الله و, علی و سلم را معریفی برای دخترای خود هم پیغمبر خدا را معریفی بکنیم برای برای اولادای خود بشناسم شخصیت بیبی بی خدیجه را شخصیت بیبی بی فاطمه را شخصیت شخصیت زنای مسلمانی را که شما ببینید زنایی بودند اولین شهید در اسلام زن بود باید این معرفی بکنیم که زنای چه قسم از اسلام دفاع می‌کردند چه قسم شخصیتات بودند چه قسم الفت داشتند چه قسم پاکی, پاکی داشتن داشتند چه قسم از برای خداوند برابر بودند در این صورت ما میتونیم که حق رسول خدا الله و, و سلم به شکل درست ادا بکنیم خدای از زواجان بر ما توفیق حسب بکنه که ما همین همی قسم که امروز خدایا ما امروز این مجلس جمع شدیم و هدف جمع شدن ما فقط رضایت خودت بوده و فقط به خاطر ازیبونه که ما درباره پیغمبر خدا صلی الله علیه و وسلم معلومه حاصل بکنیم پروردگارا این مجلس ما را مجلس نورانی بگردان خدایا هر کسی که به خاطر اتم مجلسه که دهو خدا خوش میشه و رسول خدا خوش میشه سعی و تلاش میکنه و هدفشی از است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام معرفی شوه و هدفش رضایت خداست و هدفش شناخت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است خداوند متعال جل جلاله بر ازنا توفیق بیشتر نصیب بکنه بر توفیق ما توفیق بده که ما پیغمبر خدا بشناسیم از دفاع بکنیم او با مردم پیغمبر خدا به شکل درست معرفی بکنیم اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه و فی الاخره حسنه